شناتو با افتخار تقدیم می کند پاتر و زندانی اسکاوان جلد سوم از مجموعه داستان‌های هری پاتر نوشته رولینگ ترجمه ویدا اسلامی تلاست لپین وقتی از حال هری پرسید هری بعد از کمی مرس گفت قضیه دیوون سازارم شنیدی؟ لپین بلافاصله فاصله گفت اونا باعث شدن از رجا رو بیفتی؟ بله بعد لحظه درنگ کرد و سوالی که در ذهن داشت قبل از آنکه که بتواند جلویش را بگیرد بر زبانش جاری شد چرا؟ چرا اونا رو من اینطوری تاثیر میذارن؟ نکنه من؟ ما... نه هری این موضوع ارتباطی با ضعف آدم نداره اگه میبینی تحصیل اونا رو تو بیشتره علتش اینه که در گذشته تو حول و حراسی وجود داره که در گذشته دیگران نیست دیمون سازا از پلیدترین موجودات روی زمینن پاتوقشون پاتوغشون جاهاست یحس و ناامیدی اونا رو به وجد میاره اونا آرامش و شور و نشاط اطرافشون رو نابود میکنن به هر کسی نزدیک بشن تمام شادی و نشاط و خاطرات خوبش رو از وجودش بیرون میکشن. با حضور اونا تنها چیزی که برای آدم میمونه بدترین خاطرات آدمه. و بدترین خاطری زندگی تو هری ممکنه باعث سقوط هر کسی از روی جارو بشه. دلیلی نداره که تو شرمنده باشی. هری که بغزگرویش را گرفته بود و به میز لپین چشم دخته بود گفت وقتی به من نزدیک میشن صدای مادرمو قبل از اینکه به دست مرد کشته بشه میشنوم آخه چرا اومدن تو ورزشگاه؟ لوپین به سردی گفت: دامبلدور به اونا اجازه نمیده برده مدرسه بشن. واسه همینم ذخیرهشون که شادی آدماست تموم شده. جمعیت شاد تو ورزشگاه کاری کرد که نتونن جلوی خودشونو بگیرن. هیجان و احساس پرشور تماشاگرا برای اونا یه ضیافت باشکوه بود. هری زیر لب گفت آسکابان باید جای وحشتناکی باشه نه؟ لپین با چهره زده سرش تکان داد و گفت قلعشون روی جزیره کوچیک بنا شده، و هر طرف که چشمیندازی دریاست اما وقتی زندانیا ها افکار خودشون میشن و قادر نیستن به چیزای خوب و نشاتنگیز فکر کنن دیگه برای نگه اونا به دیوار و دریا احتیاجی نیست بیشتر زندانیا بعد از چند هفته دیوونه میشن هری آهسته گفت ولی بلک از چنگشون فرار کرد کیف لپین لغزید و به زمین افتاد و او فوری خم شد آن را برداشت و همانطور که برمیخواست گفت بله حتما بلک راهی برای مقابله با اونا پیدا کرده اگه جادوگری مدت زیادی کنار دیوونه سازا بمونه نیرو و تبانش رو به زوال میره ناگان هری گفت ولی شما اون شب توی قطار اون دیوونه ساز رو فراری دادین لپین گفت البته چند روش دفاعی وجود داره اما اون شب فقط یه دیوونه ساز توی قطار بود هرچی تعدادشون زیادتر باشه مبارزه با اونا مشکلتره هری بلافاصله فاصله گفت چه روشهایی؟ میشه شما اونا رو به من یاد بدین؟ دوپین با چهره مصمم هری نگاه کرد لحظه مردد ماند و بعد گفت باشه من سعی خودمو میکنم اما متأسفانه باید تا ترم بعد صبر کنی من قبل از شروع تعطیلات کارای زیادی دارم که باید انجام بدم مدبختی بیموقع نهیز شده در آخرین تعطیلات آخر, آخر هفته‌ی ترم قرار بود دانش آموزان بار دیگر به آگزمید سفر کنند و این مایه خوشحالی همه غیر از هری بود که البته به طرز غریبی برطرف شد. فرد و جورج برادران دوقلوی رون به عنوان هدیه‌ی کریسمس یک نقشه‌ی قارتگر به او هدیه دادند. وقتی جورج می‌خواست کار آن را به هری یاد بدهد، چوب دستی دا دارا را درآورد و به نقشه‌ی قارتگر که کاغذی بی‌هیچ نوشته و علامتی بود، ضربه زد و گفت: من رسمن قسم می خورم کار بدی انجام میدم. بلافاصله فاصله خطوط ریز و زریفی روی کاغذ پوستی پدیدار شد. خطوط به یکدیگر میپیوستند همدیگر را قطع می و تا کاغذ امتداد مییافتند آفتند. سنجام از بالای کاغذ کلمات سبزنگی پیدا شدند. آقایان محتابی، دنباریک، پانمدی و شاخدار گروه امدادرسان ویژه جادوگران قطاکار، مفتخرند که تولید جدیدشان را معرفی کنند. نقشه قارتگر نقشه کامل قلعه هاگوارتس بود و جزئیات قلعه و محوطه اطراف آن را نشان میداد نقطه های ریزی نیز روی آن در حال حرکت بودند. در کنار هر نقطه با حروف ریزی اسم شخصی نوشته شده بود. در این نقشه چندین راه و تونل مخفی وجود داشت که هری هیچ وقت داخل آنها نرفته بود و خیلی از آنها به هاگزمید می رسید. فرید به هری گوش زد کرد که از راهی نرود که به بیدکو زن سر در آورد. یکی از راهها مطمئن بود که از پشت مجسمه ساهری گوش پشت یک چشم شروع میشد. ضمناً به هری یادآوری کرد که وقتی کارش با نقشه تمام شد با چوب دستی ضربه ای بان با بزند تا تمام محتویات نقشه پاک شود. این نقشه از همان وسایل سحرامید خطرناکی بود که آقای ویزلی هری را از آنها منع کرده بود. اما هری این استدلال کرد که قصد او آزار و اذیت کسی نیست و فقط میخواهد به عگزیک می سپس به طور ناگانی نقشه را دوله کرد و زیر ردایش گذاشت و با عجله خود را به پشت مجسمه سااهره یک چشم رساند. حروف ریزی روی نقشه نمودار شد. یوم هری این ورد را زمزمه کرد و به سایرره سنگی ضر بزد. بلا فاصله بوز مجسمه کنار رفت، با او پلی به اندازه عبور یک شخص لاغرندام باز شد. حری فوراً به بالا و پایین راهرو نگاهی انداخت و نقشه را که از زیر ردایش بیرون کشیده و باز کرده بود، لوله کرد و در جیبش گذاشت. سپس با سر وارد اوپره شد و خود را جلو کشید. بعد هری از فروشگاهی در هاگزمیت سر در آورد انواع و اقسام آبنبات و شیرینی و شکلات که حتی در تصور نیز نمی گنجید ردیف به ردیف در قفسه به چشم می خود. لحظه ای بعد رون و هرمیون را جلوی فروشگاهی دید رون ظرف شیشه‌ای را زیر بینی هرمیون تکان می‌داد و می‌گفت اینا خوبه هری گفت به هیچ بچ چیزی نمونده بود که شیشه از دست رون به زمین بیفتد هرمیون جیر کوتاهی کشید و گفت هری تو اینجا چی کار میکنی؟ چطوری تونستی؟ رون که زده شده بود گفت فاقا نکنه غیب و ظاهر شدم یاد گرفتی؟ هری گفت نه بابا سپس قضیه نقشه غارت کرد و برایشان تعریف کرد رون با ناراحتی گفت پس چرا جورج و فرید نقشه رو به من ندادم؟ هرچی باشه من برادرشونم هرمیون که گویی هر هرزلون در نظرش مسخره بود گفت هری که نمیخواد اونو نگاه داره میخواد اونو بده به مک کنگال مگه نه هری هری گفت نه رون با چشمای از حدقه درآمده به هرمیون نگاهی کرد و گفت مگه دیوونه شدی چرا باید نقشه این خوبی رو تحویل بده هری گفت اگه تحویل بدم مجبور میشم توضیح بدم که اونو از کجا آوردم اون وقت قضیه لو میره آقا فرد و جرج اونو از تو کشوه وسایل ممنوعه کش رفتن. پس از آن هر سه از فروشگاه خارج شدند و در آن هوای بورانی به خیابان رفتند بعد از عرض خیابان گذشتند و وارد مهمانخانهای کوچک شدند مهمانخانهٔ گرم و شلوغ و پر از دودی بود هری و هرمیون به سوی یک میز کوچک و خالی در انتهای سالن رفتند که بین صندلی و بخاری دیواری قرار داشت ناگهان باد سردی به موهای هری خورد هری از کنار جامش نگاهی به در انداخت و زبانش بند آمد پروفسور مکگونگال و پروفسور فیلیتویک که دانههای برف چون گرد سفیدی بر سرشان نشسته بود وارد مهمانخانه شدند بلافاصله هاگرید در حال صحبت کردن با مرد نسبتاً چاقی که کلاه سبز روشنی بر سر داشت و شنل راهرای پوشیده بود وارد شدند آن مرد کسی نبود جز کورنلیوس فاج وزیر و جادو رون و هرمیون با هم دستشان را رو روی هری گذاشتند و او را وادار کردند از صندلیش پایین برود و به زیر میز بخزد هرمیون نیز بلا فاصله درخت کریسمس کنار میز را با وردی از جایش بلند کرد و روبروی میزشان قرار داد طوری که از نظر پنهان شوند هری صدای قرولند وزیر و اساتید را هنگام نشستن شنید مادم مقام روزمرتا صاحب مهمانخانه گفت من هنوز نمیتونم باور کنم رفتن هر کسی رو به دنیای تاریک باور میکردم الا رفتن بلک رو اون وقتا که توی هاگوارت درس میخون یادمه اون روزا فکرشم نمیکردم که اینطوری بشه فاج با صدای گرفته گفت تو نصف ماجرارم خبر نداری مادام روزمرتا که حسابی کنچکاپ شده بود گفت مگه چیز هم هست پروفسور مکگونگال آهسته گفت تو گفتی اون روزا رو که بلک توی هاگوارت درس میخون یادته بگو ببینم یادته که بهترین دوستش کی بود؟ مادام روزمرتا خندید و گفت خب معلومه سیریوس بلک و جیمز پاتر مثل یه روح بودن توی بدن هری از دستش افتاد و صدا کرد رون به او لگت زد پروفسور مک گنگال گفت آره بلک و پاتر دسته گروه کوچیکشون بودن فاج گفت بله درسته پاتر به بلک بیشتر از بقیه دوستاش اعتماد داشت. وقتی هم با لیلی ازدواج کرد بلک ساقدوششون بود. بعد از تولد هری بلک رو پدر اون کردن. البته هری خودش چیزی نمیدونه. خودتون بهتر میدونین که اگه بفهمه چقدر زجر میدشه. مادام روزمرتا گفت چرا؟ برای اینکه بلک به گروه اسمشون نبر ملحق شد؟ نه عزیز. ماجرا خیلی تر از این حرف هیچکس نمیدونه که پاترها میدونستن نبر دنبالشونه اینو دامبلدور از طریق چند تا از جاسوساش بهشون گفته بود بعدم پیشنهاد کرد که یه جا مخفی بشن اما به این راحتی نمیشد از چشم نبر مخفی شد دامبلدور بهشون گفت که بهتر از افسون وفاداری استفاده کنند افسون وفاداری دیگه چیه؟ یه جور ترس پیچیده است. ترجه کارش اینه که یه راز رو به وسینه سهر درون فرد زنده پنهان میکنه. اون اطلاعات تو وجود اون طرف که بهش رازدار میگن مخفی میشه و از اون به بعد امکان نداره کسی بتونه بهشون دست پیدا کنه. مگر اینکه شخص رازدار خودش اطلاعات رو فاش کنه. تا وقتی که رازدار پترها ساکت میموند امکان نداشت اسمشو نبر اونا رو پیدا کنه مدام روزمرتا زیر لب گفت پس بلک رازدار پترها بوده پروفسور مک گفت بله پتر به دامبلدور گفته بود که اگه بلک سرش بره اونا رو لو نمیده اما دامبلدور باز هم نگران بود یادم پیشنهاد کرد خودش رازدار پتر بشه یعنی به بلک اعتماد نداشت پروفسور مک گنگال چهره را در هم کشید و گفت مطمئن بود که یکی از اطرافیان پاتر برای اسمشو نبرد جاسوسی میکنه در واقع مدت‌ها بود که میدونست یکی از افراد گروه خودمونه که داره خیانت میکنه با این همه بازم جیمز پاتر اصرار داشت بلک رازدارشون باشه؟ فاج با میتاند گفت بله اما درست یک هفته بعد از اجرای افسون وفاداری مادام روزمرتا آهسته زمزمه کرد بلک بهشون خیانت کرد چه خیانتی هم کرد بلک از جاسوس دو جانبه بودن خسته شده بود از قرار معلوم تصمیم داشته بعد از کشته شدن پاتر حمایتش از اسمش نبر علنی کنه اما چون بعدش اسمش نبر قدرتشو از دست داد وضعیت بلک هم متزلزل شد درست همون موقع که بلک چهره پلیدش نشون داد اربابش قدرتشو از دست داد و چاره ای نداشت جز اینکه فرار کنه در این لحظه هاگریت با عصبانیت گفت من دیدمش هری رو از تو اون خونه مخلوبه بیرون بردن و همون موقع بود که سر و بلک پیدا شد اصلا به فکرم نرسید اونجا چیکار میکنه فکر میکردم اومده بهشون کمک کنه. من که اون رازدار لیلی و جیمز بوده من احمق به اون قاتل خیانتکار اعتماد کردم و گذاشتم بره پس از یک آگرید سکوت سنگینی حکم فرما شد کمی بعد مادام روز مرتاب با خوشنودی گفت ولی اون نتونست فرار کنه فردای اون روز وزارت وزارتخونه دستگیرش کردن نه؟ فاش به تلخی گفت افسوس ای کاش ما پیداش کرده بودیم این ما نبودیم که اونو پیدا کردیم پیتر پتیگرو بود یه دوست دیگه پتر شک نداریم که میخواسته انتقام پتر را از بلک بگیره چون اون میدونست بلک راهزدارشون بوده مادام روزمرتا گفت پتیگرو؟ همون پسر چاقه که همیشه دنبالشون را میفتاد؟ پروزار مکگونگال گفت بلک و پتر رو میپرستیم خیلی زیرک بود ولی هیچ وقت بارده دار دسته اونا نشد فاج ادامه داد و مثل قهرمان ها مرد شاهده ها به من گفتن که بلک پیتر رو ریز ریز کرد بعد از کشتار گروهی بلک من یکی از اولین کسایی بودم که سر صحنه حاضر شدم هیچ وقت اون صحنه رو فراموش نمیکنم. وسط خیابون زمین دهن باز کرده بود و جسد آدمها اینور این اونور ور افتاده بود بلک هم ایستاده بود و میخندی درست جلو پاش ردای خونین پتیگرو افتاده بود و یه مشت گوشت و سخونه ریز ریز شده بیس نفر از گروه گشت اجرای احکام به لک رو بردن آسکابان مادام روزمرتا آه عمیقی کشید و گفت جناب وزیر این درسته که میگن بلک دیوونه فاچ آهسته گفت ای کاش دیوونه بود به نظر من که شکست اربابش باعث شد یه مدتی اقل سرش بپره چون کشتن پتیگرو و اون مشنگا فقط از یه آدم ناامید برمیومد آخرین باری که برای بازرسی به با آسکابان رفتم بلکرو اونجا دیدم بیشتر زندانی های اونجا یه گوشه می‌شینن و زیر لب با خودشون حرف می‌زنن. عقل درست و حسابی ندارم ولی وقتی دیدم بلک آدیه از تعجب کشکم زد وقتی با هم صحبت میکردیم خیلی عاقل و مندلی به نظر میرسید انگار حسل سر رفته بود به من گفت اگه روزنامم رو لازم ندارم بدمش به اون چون دلش برای جدول حل کردن تنگ شده وقتی دیدم دیوون سازا هیچ اثری روی اون نزاشتن خیلی جا کرد تازه اون یکی از زندانی های ویژه بود چند تا دیوونه ساز در سدولش 24 ساعته نگهبانی میدادن مدام روزمرتا گفت جناب وزیر به نظر شما چرا از زندان فرار کرده؟ نکنه میخواد دوباره با اسمش نبر همکاری کنه؟ فاج به او جواب سربالا داد و گفت امیدوارم قبل از اینکه بتونه این کارو بکنه دستگیرش کنی. عزیز شنونده پنجمین قسمت از رمان خلیفاتیر و زندانی آسفابان را شنیدید. فردا شب با آخرین قسمت از بازخوانی این رمان در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان همه شما دوستان عزیز شنونده رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب بخیر و خدا یار و نگهدار شما. تصر بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com